داوری گربه روزی بود و روزگاری بود در دامنی کوهی که گروهی مرغان وحشی زندگی می کردند یک زاغ هم روی درختی آشیانه ساخته بود و یک کپک دری هم در همان نزدیکی خانه داشت و این دوتا به حکم همسایگی با هم آشنا شده و اونس گرفته بودند بیشتر روزها اوقات فراغت خود را با هم به سر می بردند و از همه جا صحبت می کردند. این بود و بود تا یک روز کپک دری تنها به صحرا رفت و دیگر برنگشت و چند روز هم گذشت و اثری و خبری از کپک نرسید وزاغ با خود فکر کرد شاید بلایی به سر کبک آمده و حلاک شده است. بعد از مدتی یک روز یک تیهوی خوشرنگ که آن هم از جنس کبکها ها و کمی کوچکتر است به آن محل رسید و چون لانه کبک را خالی و بی صاحب یافت آن را آب و جارو کرد و در آن منزل کرد. زاخ هم که از تنهایی و نداشتن همسایه و همسخن خیلی دلتنگ شده بود اعتراضی نکرد و با خود گفت حالا که کبک دری گم شده و خبری از او نیست چه ضرر دارد که تیهو در این خانه زندگی کند؟ این لانه در حقیقت مال کبک هم نبود بلکه مال مرق دیگری بود که پیشتر از آن شکارچیان او را شکار کرده بودند بعد کبک خانه را تعمیر کرده بود و او هم که گم شده بود روز بعد زاغ یک دسته گل فراهم کرد و برای اینکه با تیهو آشنا شود به سراغ او رفت و گفت خیلی خوش آمدی صفا آوردی راستش این است که من در این گوشه صحرا تنها بودم و مرغان دیگر منزلشان دورتر است در این لانه هم یک کپک زندگی می کرد و برای من همسایه خوبی بود ولی مدتی است که گم شده و حالا که از او خبری نیست امیدوارم در اینجا به شما خوش بگذرد تیهو هم تعارف کرد و روز بعد برای بازدید به لانه زاغ آمد و بعد هم گاه گاه یکدیگر را میدیدند و احوالپرسی پرسی می کردند چندی گذشت و زاغ و تیهو تازه داشتند با هم اونس می گرفتن که یک روز نایهان کبک دری از سفر باز آمد و چندی تیهوی ناشناس در لانه منزل کرده اعتراض کرد و گفت کی به تو اجازه داده در این خانه منزل کنی؟ تیهوی که را را شناخت و از این حرف ناراحت شده بود جواب داد به هیچ کس مربوط نیست من در خانه خودم نشستم کی به تو اجازه داده که آسایش مرا به هم بزنی و داد و فریاد راه بیاندازی مگر تو صاحب این بیابان هستی که در کار من دخالت کنی کپک بیشتر عصبانی شد و گفت خانه مال من است و باید زود تخلیه کنی یا بروی تیهو جواب داد خانه در تصرف من است و تا موقعی که کسی با سند و مدرک مالکیت خود را ثابت نکند طبق قانون من مالکان هستم کب گفت تصرف تو به زور و غصب است و من شاهد دارم که خانه مال من بوده است تیهو جواب داد چه شاهدی از این بالاتر که من در این خانه زندگی می کنم و تو اجار نامهی در دست نداری که خانه را به من اجاره داده باشی؟ خیلی هم حرف بزنی میگیرم پر و بالت را شاخ شاخه کنم. خلاصه میان ایشان گفتگوی زیادی شد و کار به آنجا رسید که زاغ و مرخ های دیگر از دور و نزدیک جمع شدند دیگران که نمیدانستند حق با کیست زاغ هم که همسایه قدیم آنها بود هر چه کوشش کرد آنها را صلح بدهد و آنها را نصیحت کرد که با هم زندگی کنند و با کمک اولانه دیگری بسازند سعی او به جایی نرسید هر ایک از مرخ دیگر هم که حرف میزدند یا چپک و یا تیهو آنها را به طرفداری از دیگری متهم می کردند. با پادرمیانی مرغان قرار شد برای رفع اختلاف بروند پیش یک حاکم عادل و بیترف تا حرفایشان را بشنود و میان آنها قضاوت و داوری کند. ولی در انتخاب داور تردید داشتند. تیهو رای کبک ها را قبول نداشت و می گفت آنها از کبک ترفداری می کنند. کبک هم قول همجنسان تیهو را قبول نداشت. حرف زاغ را هم قبول نداشتند و می چون همسایه خانه است ممکن است نظر خصوصی داشته باشد و بخواهد خانه را صاحب شود. یکی از مرغها پیشنهاد کرد بهتر است دعوای خود را پیش گربه خوش‌خلق و خال ببرند چون او به لانه مرغها احتیاجی ندارد منزل گربه هم به اینجا خیلی نزدیک است و این گربه حیوانی است که هیچ کس از او بدی ندیده و چون مدتی در میان آدم ها زندگی کرده همه جور راه و رسم داوری را می داند و اینقدر فقیر است که هنوز از مال دنیا یک خانه هم ندارد و مزد و پاداش هم نمی گیرد و چون خدا را در نظر دارد از کسی حساب نمیبرد و حرف حق میزند و هیچ کس از او شایستهتر نیست تا میان شما حک کند. کپکت او هم که خودشان از صلح و سازش آجز بودند داوری گربه را قبول کردند و روانه شدند تا حرفهای خود را پیش آن قاضی بیطرف و عادل بزنند و هرچه او رعی داد بپذیرند. زاغ هم که همسایی آنها بود به دنبال آنها براه افتاد تا اجرای ادالت را در محضر گربه تماشا کند و اگر شاهد لازم شد هرچی را می داند شهادت بدهد از آن طرف گربه که در منزل نشسته و برای یافتن خوراک مشغول فکر بود همین که صدای پای کبک و را شنید خود را به خواب زد و با خود گفت بوی پرنده میآید بوی پرنده میآید آنها از دیدن گربه خوشحال شدند و صبر کردند تا گربه از خواب بیدار شد و خمیازه ای کشید و چشمهایش را باز کرد و آن وقت به آنها خوش آمد گفت آنها هم سلام کردند و تقاضا کردند که میان ایشان حاکم باشد و در دعوای ایشان با ادالت رأی بدهد گربه اول گفت شما که خودتان حقیقت حال خودتان را بهتر از من میدانید بروید با هم صلح کنید ولی بعد از اینکه کبک و تیهو خیلی التماس کردند گربه قبول کرد و گفت شرح دعوای خود را بگویید وقتی کبک و تیهو هر یک ماجرای خانه را شرح دادند گربه شروع به سخن کرد و گفت ای جوانان دعوای شما مربوط به مال دنیاست و دوستی مال دنیا همیشه مایه اختلاف است من در کتابها ها خواندم که هر کس راستی و درستی را پیشه کند و چشم به مال مردم نداشته باشد خداوند به او پاداش خیر خواهد داد اینک که پیش از اینکه وارد اصل دعوا شویم شما را نصیحتی می کنم برادران همیشه خدا را در نظر داشته باشید و سعی کنید آزار و اذیت شما به هیچ کس نرسد تا نزد خدا رو سفید باشید در این وقت گربه سرفه‌ای کرد و بعد گفت <تصفيق> آه که من دیگر پیر شدم و از ضعف قلب نمیتوانم حرکت کنم و گوشمم سنگین شده و درست سخنان شما را نفهمیدم خوب از قدری نزدیکتر بیایید و حرفهای خود را دوباره بلندتر بیان کنید تا من درست بشنوم و به وضع خانه و سابقه آن آشنا شوم و مطابق قانون گربه های سالم و نیرومند میان شما حکم کنم کعب کوتیهو از شنیدن این حرف دلیرتر شدند و نزدیکتر رفتند بعد کبک در جواب گربه گفت جناب آقای گربه امیدواریم خداوند کسالت شما را شفا بدهد و سایه مبارک شما را از سر ما کم نکند حقیقت آن است که فرمایش های شما کاملا صحیح است و اگر مردم راستی و درستی را شعار خود می و حق خودشان و دیگران را به جای خود می شناختند دیگر این همه دعوا و گفتگو و, و شکایت و گرفتاری در میان نبود و ما هم همین آرزو رو داریم که مطابق حق عدالت بین ما حکم کنی تیهو گفت بله ما جز حق و عدالت چیزی نمیخواهیم گرب گربه گفت آفرین بر شما که به حکم ادالت راضی شده اید من یقین دارم که خوشبختی مال کسانی است که همیشه طرفدار حقیقت هستند و کسی که چیزی را به ناحق تصرف کند اگرچه یکی دو روز خوشحال باشد در حقیقت خوشبخت نیست بعد کمی صرفه کرد و گفت <تصفيق> خب، حالا بگویید ببینم آن خانه به مال کلدامیک از شماست در ضمن قدری بلندتر حرف بزنید که من درست بشنوم و فراموش نکنید که خداوند همه چیز را میداند و باید درست بگویید. تیهو که از حرفهای گربه خیلی به ادالت او امیدوار شده بودند قدری پیشتر رفتند و جلوی روی گربه نشستند و همین که خواستن سخن را شروع کنند ناگهان گربه به یک حمله به طرف آنها خیز برداشت و هر دو کبک و را به چنگ و دندان گرفت و خورد و بعد صورت و دهان خود را با دستهایش پاک کرد و زیر لب گفت <تصفيق> بله وقتی دو موجود ضعیف نمیخواند حق خودشان را بشناسند و شکایت خود را نزد بیگانه زورمند میبرند و از حرفهای خوشظاهر شخص ناشناس فریب میخورند ادالت چون این حکم می کند که من فعلا شکم خود را سیر کنم این هم؟ داستان گربه خوشخط و خواهر